بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سيدنا و نبینا محمد صلی الله علیه آله و علی آل لا سيما بقيه الله في الارض اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما و يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> السلام علیک ایوها النبی و رحمت الله و السلام علی الأئمة الحادین المهدیین السلام علی جمی انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحين. السلام علی امیر المؤمنین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 السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجباد السلام على بن بن علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و آبائه في هذه الساعة وفي كل کل ساعة ولی و حافظ و غائد و مناصر و دلیل و عین حتی تسکنه و ارزک توعا و اللهم و جعلنا من انصارهی و اعبانه عوض به الله من الشیطان الرجیم و اذا سأل که عبادی انی فا انی غریبون اجیب و دعوتت داعه اذا دعان فلیستجیبولی ولی یومنوبی لعلهم یرشدون آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بغره خب هفته گذشته به مناسبت شام قدیر بحثمون رو در رابطه با این آیه کردیم حق هم همون بود و وعده دادم که امشب به عنوان آخرین شب جمعه در واقع این ایام و قبل از ماه محرم این آیه رو دیگه جمبندی کنم برنامه از هفته آینده به مناسبت محرم رو انشاءالله آخر جلسه عرض خواهم کرد لذا امشب ولو اون بحث هایی که در رابطه با این آیه شریفه به خصوص در روایاتی که از معصومین علیهم السلام داریم که قسمتیش رو موفق شدیم بحث کردیم بخوایم ادامه بدیم هنوز جای بحث خیلی داره ولی اجازه بدید دیگه محرم در پیش از و ها هم تغییر میکنه من امشب جنببندی کنم در حد همین نمیدونم هفت یا شش یا هشت جلسه شد ظاهرا این آیه شریفه فعلا کافی باشه ان الله بعد از ماه محرم و شروع جلسات بعد از تعطیلات نوروزی ادامه آیات رو اگر خدا توفیقی داد پی خواهیم گرفت ان الله خلاصه حرفا این بود که از سرلک عبادی انی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 که پئنی غریب و اوجی و دعوته دعان صحبت داع و دعان مطرحه کسی دعا میکنه خدا را میخواند به در خانه خدا به عنوان دعا کننده میرود این داره سوال میکنه من خدا در رابطیه با من و دعا مسئله چگونه است بسیار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 و اتصال به مبدع قدرت داشته باشی این خودش ارزش هم روایات میگفتم ادله داد دعا حال و هوای عالم معنوی به ما میده انسان تو چه آدمی سیر میکنه الان یه لحظه شما امروز صبح تا رو در نظر بگیرید یا هفته ای که پشت سر گذاشتید از شنبه تا این لحظه رو در نظر بگیرید لحظه های مختلفی ممکنه داشتید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 غیبت کنن، حرفای شکم و شهوت بزنن، کیف میکنی و خوشمون میاد. حال هوامون حال هوایی این بود. اما گاهی میدیدیم نه، وقتی توی جمع صحبت از شکم و شهوت میشه یا صحبت از غیبتو، میسی که کسل میشم، بدم میاد. عکس الان دوست داشتم یه حدیثی برام بخونن، یه آیه بخونن، یه شعر معنوی خونده بشه، یک جمله‌ای، یه کمی میسی که بال در بیارم. حال هوای انسان در این دنیا چه حال هواییه؟ اگر گفتن هرگه صحبت حاضر قائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است و از برون در بازارم و از درون با بایارم آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده اینا حالات انسانه که میتونه داشته باشه و ما با ادله بسیار به این مطلب رسیدیم که بهترین حال و هوا حال و هوای در عالم معنا سیر کردنه ولو در ماده ایم ولو در این ملکیم، اما ارتباطمون ارتباط معنوی و ملکوتی باشه حال و حال و عالم دیگر باشه مثلا از باب نمونه میدید کنار یک مغازه تابلو فروشی یا یک خطات خطی نوشته توی تابلو توی ویترین مغازش گذاشته برای فروش یک زمان حال و هوا و زوغ اینه بدم نیست این کلام میخوام بگم ولی مقایسه کنیم با بهترش یک زمان حال و هوا و زوغ اینه این قاب عجب چوب قشنگیه عجب رنگای زیبایی داره عجب مثلا منبتکاری های زیبایی داره عجب این خط و هنر خطاطی زیباست حال و هوا اینه یک ساعت دو ساعت کمتر بیشتر به اقتضای ذوق اون تماشا کننده واسطاده داره این قاب رو نگاه میکنه این خط رو نگاه میکنه و تفسیر میکنه لذت میبره و برای دیگری بیان میکنه یه وقت هست کنار این ویترین مغازه استاد از پشت شیشه نگاه به این قاب میندازه عشق داره چشماش میاد رنگش هم احیانا تغییر کرده میگید یه حال هوای دیگه ای داره میگه چیه میگه این شعر داره منو آتش می در منه میشوزونه. نمیگه شرج حالا اتفاقا خط قشنگم نباشه یه بد خطی نوشته قابش هم حالا یه چوب ورداشته یه مقداری مثلا همچی هنرمندی توی این قابم انجام نداده نه زیبایی قاب نظر شما رو میگیره نه هنر خطاطی نظر شما معنایی که از این شعر دارید به دست میارید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 که منت ناخدا کشد حالا در شعری وزن و قافیه و اما این معنا با آدم چه میکنه در کشتی بلا گر نگهدار ما خداست ابله کسیست که مننت ناخدا کشد ممکنه سه ساعت چار ساعت شما رو این شعر با خودش مشغول کنه حال هواتون یا حال هوای دیگه بشه به اقتضای درون این اکاس برونی داریم از کوزه برون تراوت هر اون چه در چه میشه یه وقت من نگاه به این قاب میکنم دو ساعت در وسب منبت و خراتی و هنرمندی نجاری این قاب حرف میزنم چون درونم اون ذوق رو داره یه وقت زیبایی خطو تفسیر میکنم درونم اون رو داره اما یک وقتم هست شما توجب یک عالم معنایی دارید این شعر یک طلمگری میزنه شما رو به اون عالم میبره این جمله یک هول میده شما رو به سوی اون عالم شما رو وارد اون عالم میکنه وقتی وارد اون عالم شدی به اندازه حال و هوایی که نسبت به اون عالم داری عکس عمل اون عالم نشون میدید خب ما توی این عالم ماده باید باشیم دستور پروردگار آلمه من اینی جایلون سل عرض خلیفه ولکم فل عرضم شما رو باید رو زمین قرار بدم متاع زندگی شما شما باید تو این آلم باشید برید تو آلم این مراحل رو کنید ولی حالا که تو زمینی تو مادهای، تو ملکی تصورتون حال و هواتون از ماده در ماده برای ماده از ملک در ملک برای ملک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 خورم آن روز که از این منزل ویران بروم راحت جنتلبم و از پی جانان بروم من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال عالمی میکشم از برای تو نه من گرچه ملک هم. الان در ملکم ولی ملکی نیستم من ملکوتیم و برای ملکم ملکوت برای ملک عالی برای دانی دانی برای عالی معنای عقلی داره لذا من ملکی که ملکی نیستم ملکوتی در ملکم ملکوتی در ملک که برای ملک نباید باشه ملکوتی در ملک باید به سوی ملکوت پرواز کنه پس میگم انا الله و انا الیه راجعون هم انا الله و هم انا الیه راجعون بزرگان تفسیر کردن من میگم میگن وقتی که فرق مبارک مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه شکافته شد کفی از خاکی ها حالا چیزی از کف محراب برداشت این رو روزخ پاشیدن و این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن منها خلقناکم و فیها نعیدو و منها نخرجو کم منها خلقناکم و فیها نعیدو و منها نخرجو خب مولا قرآن ناطره همه قرآن اون هفتم یه اشاره کردم به مناسبت شام قدیر با ادله اینا تو سینه مولاست او مترجمان حقیقی وحیه چرا امیر در میان همه آیات این آیه رو انتخاب کرده؟ بنده باشم خب یا آدم معمولیم حالا این آیه هم اومد دلیل نداره که چون من این آیه رو الان میخونن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 این آیه رو بخون افا ما او قتل انقلبتم الا اعقا چرا این آیه؟ چرا؟ این قرآن آیاتی دیگه نداره این آیه اگر از نظر تقدم و تأخر نزول بگیم نه اولین آیه است نه آخرین آیه بگیم اولی رو گفته یا آخری رو گفته اونجا حکمت نبوی ایجاب میکنه بگه یعنی بناس برگردوننا انقلبتم الا اعقا بگم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 وقتی تو محراب فرز شکافته می شوی منها خلقناکم وفیها نوید وکم و منها نخرجکم این آیه شریف را مطرح میکنه بزرگان تفسیر کردن در تفاسیرم ذیلین آیه دیدم اشاره به این فرموده مولا میکنن میگن حضرت می‌خاد این توجه رو به ما بده اگر این مشت خاک رو می‌بینی درست من از خاک بدنم همون گونه که ابلیس هم گفت او از خاک آفریدی منو از نار اما وقتی خلقت از تین و لقد خلقنل انسان من شلالت من تین بعد و نفخت و فیه من روحی هم فرموده یا نه ثم انشعناه و خلقن آخر هم فرموده یا نه به حساب انشعناه و خلقن آخر و به حساب نفخت و فیه من روحی درست منها خلقناه کن و بعد هم دوباره برگر من میام تو این عالم ولی از این عالم خارج میشم دوباره وارد یه عالم دیگه میخوام بشم یعنی حضرت مخواد این معنا رو لاعقل این قسمتشی که بزرگان فهمیدن به ما یاد دادن این مقدار رو به میخواد بگه فکر نکنم این خاک بود مردی تموم شد ما اومدیم تو خاک ولی از این خاک خارج میشیم دوباره سر از عالم دیگه برمیداریم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 هر چی هستی هر هستی حال و هوای من گرچه در این خاکم ولی برای این خاک نیستم من یه عالم ای دارم موقتم خلقتم للبغا لا للفنا ولاکن من دار الى دار تنتقلون انما دنیا المزمار و قدن السباق وقتی این معانی برای یک کسی مطرح بشه تو هر وادی که مشغول کاره حال و هواش حال و هوای دیگریه معمور است که این عالم رو تحمل کنه وگرنه نه آنی به این عالم دل خوش نمی کنه تو گفتی چه هش. خطبه همامم اینه توضیح میده. حالا حالا حال و هوا این نباشه چرا جز شکم و شهبت چیز دیگه فکر کنه چرا جز پول چیز دیگه فکر کنه چرا جز مقام اصلا ببینید این چرا آخه آقل یه وقت کاری دیوون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 برم تو عالم بیخیالی متوجه این غصه نشم خب راه بهتر نفهمیده بدبخت خیال میکنه با این حالت رو از این مشکل ببری بیرون توی حال... حاله میفهمه اون حال هوایی بعدی خطرش بیشتر از این است. اون چون نمیفهمه اون نمیفهمه یا تریاک میکیشم خدایی نکرده هیروین مصرف میکنه آقا چرا؟ میخوام نعشه بشم که کی بشه؟ درم توی عالم دیگه خب اون عالم چیه؟ او به اقتضای نعشگی خودش یه ارزشی برای اون عالم قائله برای این که از این عالم راضی نیست خارج شود وارد اون عالم بهتر بشه با اینکه در این عالم ا مستم تو این عالمه ولی خودشو توی عالم دیگه میبینه نعشه تریاک و هروئینم تو این عالمه خودشو توی عالم دیگه میبینه ولی با این مشکلات که پدر خودشو در میاره بیچاره میکنه یه وقت به خودش میاد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 زندگی مسائل خاص جنسی و غیره و زندگی و زن و اینا فکر میکردی یک ودی بالاتر دیدی خب اینام چی آقا میزی داشته باشم پستی داشته باشم مقامی داشته باشم خودمو برای خود جامعه بکشم واقع مطلب یک کمی فکر بیدار بشه که خدا خدا و عرضش امیر المؤمنین قسمت میدم فکر ما را در شناخت ارزش های عالم وجود بیدار بفرما یه مقدار بیداری که چی؟ آقای این مثال من یه بار دیگه خوشم میاد. به خدا راست میگم. خودم با خودم. خیلی وقتا خلوت میکنم فکر میکنم. میگم فرض کن تمام دنیا. جشت و منو. ببینید با این مثالی که میزنم اینجوری هست یا نه. اگه فکر کنیم. آقای کودکستان. پنجا تا کودک دو ساله. سه ساله توش. به بنده میگم دو ساعت سه ساعت مسئولی مهد و کودک شد. چشم بنده رفتن هی hey, دست میکنم کنم تو جیبم چی آقا مدارک تحصیلی و تعریف‌های های دنیا رو در بیارم آبم نیست اینجا بزنم چرا می‌خندید خب کی چی بشه بچه های دو ساله ببینن که کی چی بشه این های دو ساله چه بدونه شما مدرک از فلان دانشگاه دارید چه ندونه چه فرقی می‌کنه اگر کسی موحد باشه غیر از خدا همه همین جوره نه توهیم غیر خداست وقتی خداداری غیر خدا کیه؟ که من قاب کنم ببینید آقا نیلخون چون حال هوای اون عالم نداری دعا میخواد تو رو ببره تو اون عالم لذا وقتی میای در مقابل پروردگار دو طرف قضیه رو مطرح میکنی یک انتل قوی یو انتل غنی یو انتل خالقو و انتل مالکو و انتل, مالک و انتل اون بر همش ارزش این طرف انال ضعیف، انال خدیر انال مسکین انال مستکین انال خلاصی چی بگم حالا اگر بخوام مزاق کنم انال هیچ چیز عربی و فارسی انال هیچ چیز من آقا شاید بهترین تعبیر همین باشه هیچ چه هیچ هیچ به یه معنی هیچ ولی به یه معنی خیلی عالی چی؟ چون او داره ما رو دعا میخواد ببره تو اون عالم حالا این چقدر ارزشه؟ ما این ارزش دعا رو بیاریم پایین در این حد فقط آقای گرفتاری دارم میگم خدایا بده اینم دعاست چون خدایا توش هست چون توجه به خدا توش هست گای خدا خدا خیلی ما رو دوست داره از هر دوست دارنده دوست دارند سر خداست خودشم فرموده ارحم و راه مینه خب یه <تصح> <تصح> <تصح> معلمی که شما رو دوست داره اون راههایی که برای هدایت شما لازم باشه به اندازه قدرتش اعمال میکنه حالا خدا که دیگه معلوم <تصفح> لذا معلم میاد گاهی اینجوری احساس میکنه میگه که این شاگرده رو میخوام بیارم تو راه راه های مختلفی رفتم یکی از این راه های مثلا نمره کم بشه بدم این میاد سراغ من میخوام بیارمش بعد شروع کنم باش نمره بهش اضافه میدم خب وقتی میخوام تو پرونده نهایی رد بشه بهش میدم ولی اینو میخوام یه روش تربیت پیش بگیرم بیاد وقتی میاد بگم این سوالو بخون سوالو میخونه خب جواب سال چی میشه جوابی این بگو مگویی که میخوام تو ذهنش توجه بدم در قالب حل مشکل این سوال که آقا شما خوب تو ورقه دقت نکردی باش مطرح میکنم بعد میگه ایبد نادر الله ارفاق میکنم دو نمره بید. دو نمره رو بهش میده ولی به این صورت یه تلنگری بهش میزنه بلا, تشبی بلا تشبی خدا گاهی تو عوامل مختلفی گوشامونه که میتابونه بعد یه نصف شبی در حالت عادی حال نداشته ولی اون نصف شبه پا میشه الاهی و ربی من لای غیرو در حالت های عادی شب جمعه حال دای کومل نداشت ولی اون موقع میاد از اعماق جان میگه خدایا غیر از تو که من کسی ندارم فلا یمکن الفرار من حکومت یک من کجا میتونم برم ای خدا میخواد دعا درستی این مراحلش هم هست اینا رو قبول دارم اشتباه نشه روایتم خوندم حتی اون کچلو چیزارم میخوای بخوای از خدا بخوا ولی ارزش دعا رو بالاتر ببین خلاصه این میشه دعا میخواهد الان حدیث میکنم براتون دعا میخواهد شما را ببرد تو عالم معنا گرچه در ماده ای با خدا باش در خلق زندگی کن گفتن زمان شاه در تبریز یک واعظی بود مرحوم ناصری خیلی عالم بر جستهی بوده منبرهای بسیار خوبی هم میگن داشته من که نمیشناختم این مرتب هم حساسیت و معروف و نحیات مانکر داشت چهار شب منبر بود ده شب زندان آزاد میشد پنج شب منبر بود دو شب زندان خلاصه این بنده خدا اینجوری بود تا یه بار از زندان دیگه تعاقد گرفته بودن دیگه از یه حرفا ایشون اومده بود صفراخطو داره منبر گفته بود آقایون خانوما من تعهد دادم نگم شاه ظالمه من تعهد کردم نگم زن شبیه جابه من تعهد کردم نگم چرا توی مملکتی که قانون اساسیش اسلام داره مشروب فروشی دایره من دیگه حرفا نمیزنم ها حالا بند نمیگم چرا صلوات تو کوتاست ها <تصفح> مم توانمون این عدد دیگه بیشتر از اینا که با. خب ببینید دعا میخواد ما رو ببره تو اون عالم این جمله یه یادگاره این 7 جلسه بحث دعای ما از این آیه باشه من برای خودم ارزش میدونم حالا که شما ببینید ارزش داره یا نه یادگار 7 جلسه بحث دعا ازا سعاله که انی عبادی این یادمون باشه دعا تراهی است که خدا ما ملکیان ما خاکیان ما گرفتاران عالم ماده رو گرچه در این عالم ایم ببره در حال و هوای عالم معنا قرار بده این مدتی که از عمرمون را میخواییم در عالم ماده سیر کنیم با حال و هوای عالم معنا سیر کنیم لذا تو هر قسمتی که کار میکنیم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 جلد دوم همون باب احادیسی که در خصوص دعا و حس بر دعا و تشویق به دعا بود خدمتون عرض کردم یک روایت در صفحه 470 عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه روایت بسیار ای در این رابطه است سمعت و عبا عبدالله علیه السلام یقول عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود از دعا یرد دل قضا دعا قضا رو تغییر میده حالا اینو شاید برسم امشن یه مختصری توضیح بدم حالا بمونم بعد ما ابرم ابراما ابرام تناب رو وقتی خیلی میتابونن میتابونن محکم بشه که چند تا با هم دیگه مثل این سیم که با هم دیگه تا بتونیشه اینو میگن ابرام محکم کاری شده باز کردن مثل ای که اینو مثلا چیز کردن بعد بخوام بازش کنن بشکافن میگه دعا غذا را رد می کند بعد از اینکه مبرم شده مثل اینکه که خیلی تابیده سف شده ما بازش می کنه اینو داشته باشید اشاره می کنم الان منظورم قسمت بعدیش. اکثر من دعاء زیاد دعا کنید فینوم مفتاح کل رحمه مفتاح و کلید هر رحمتی دعاست و نجاح و کل حاجه هر حاجتی هر خواستی ای این دعا عامل رستگاری شما میتونه باشه ولا ینال ما عند الله عز و جل الا در نزد خدا یه ارزش هاییست یه مقاماتی، نمی رسید به اونجا مگر با دعا این بحثی که ما داریم با دعا حالا هوا رو ببرید تو عالم قرب الهی تو عالم قرب الهی که رفتید لذا ببینید مثلا یه بزرگواری واقعا از یه حرفش خوشم می اومد داشت به بعضی توصیه می کرد سفر زیارتی کربلا مکه امام رضا، کارایی خیر روزمره گفت آقا جونه انقدر چرد که ننداد چقدر ثواب بردم من یه بنده خدایی به بعضیا ها میگه آقا من کمک به تو میکنم بنویسید بیسید نصف ثبابتون مال من آخه مسلمان اگر تو کار خیر برای خدا بکنی خدا بیش از نصف ثبابی این نمیتونه به تو بده تو وقتی بیای میگی پس چشم ثبابی این دوختی میگی نصف سواب تو رو میخوام خو خدا که برو خودت میدونی با این اولا چه میدونی فردای قیامت این سوابی داره یا نداره تازه داره خب بندازه اندازه نصف این اینجیرت میاد بگو خدا چون تو دوست داری من این کار با بندگانت میکنم خدا بیشتر از نصف سواب نمیتونه به تو بده عاقل باشیم لذا فکر تاجرانه مادی نکنیم فکر تاجرانه الهی بکنیم چون قرآن داره هل کن الات تجار قرآنم تجارت رو به ما یاد میده چه تجارتی برای خدا بودن وقتی بخوای برای خدا حالا این چون مجبورم میگم خدایا تو میدونی به چه انگیزه میگم یه وقتی یه آقایی به یکی از دوستان ما تماس گرفته بود شنیدیم فلانی اسم بندر آورده بود خیلی پول میگیره برای سخنرانی راسته گفته بود بله خیلیشون زیاد میگیره پس ما نمیتونیم یه دهیشون دعوت کنیم میبینیم معمولا دعوت شون قبول نمیکنه گفته بود بله من فکر نمی کنم چون من یه بار به ایشون گفتم چقدر شما میگیری گفت اون چه من میخوام شما نمیتونید فکر بدی چون من از خدا می گیرم خدا میده امیدوارم امیدوارم امیدوارم به برکت مولا صاحبه اصل و از زمان خدا این فکر از ما نگیره که اگه بناس ما چیزی بگیریم چرا از خدا نگیریم چرا فقط از بندگان خدا بگیریم خدای این بنده خدا این بنده خدا در هر شطیه او خدای اینه لذا چرتکن نندازید. اینقدر ثواب کردم، اینقدر کاری چی کردم، گفت تو بگو خدا یا تو دوست داری کار کارو بکنی ما این کارو میکنیم. خودت میدونی دوست داری این کار رو من بکنم، من میکنم. میخوای به ولی ببر؟ هر دوست از دوست است، جمله نکوز. ای این معرفتی. دعا میخواد اینجوری ما رو بار بیاره. لذا یه وقت پای منبری بودم، به منبریشم ارادت دارم. خدا پسشون کنه، حیاتم دارن. مجبور شدم از پای منبر که این خیلی بیادبی بود ولی این اعتراض و بکنم تو احساس تکلیف کردم داش بالای منبر توضیح میداد 15 نفرم بیشتر پای منبر نبودم. داش میفرمود که این چطوریه گفتن گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود من در عجبم کن کجا خواهد بود اونجا که تو ازاب عذاب نوبت اونجا که تو نیستی کجا خواهد بود گفتی مزخرفات چیه با کلمه مزخرفات دیدن دیگه یه کمی بی از پای منبر گفتم جواب بخش معنای این شعر ما دو جور مثل مارمیت ازرمیت رو به ظاهر آیا نگاه کنید جبره مارمیت ازرمیت شما نیستید تیر میندازید خداست که و اینکه جبره اما وقتی اوج توحید مخواد نشون بده خود رو در مقابل خدا هیچ ببین گفتی که ترا عذاب خواهم فرمود من در عجبم که اون کجا خواهد بود از این دید نگاه کنید خدا یا هرچی تو میخوای من میگم چش. اگه تو میخوای منه ببری جهنم تو خواستی. اگه کسی بتونه چشم مقامی داشته باشه تسلیم خدا باشه به این من بنده تو دنیای حاجت دارم تا حاجتم روا نشوده هی hey, دعا یا الله یا رب یا رحمان چه می کنم وقتی حاجته نداد دیگه اصلا از این رو بنرو میشم دیگه نمازامم شاید خدایی نکرده رها کنم ولی حاجتم که بده دعا خدا خیلی خوبه چرا؟ چون حاجت منه داد پس ملاک منم مورچه افتاد تو آب گفت وای دنیا را آب برده گفتن دنیا را من را آب برده گفت: تو آب برد گو مگه دنیا غیر از منه خودشه میخواد ببینه دعا میخواد ما رو ببره تو عالم الهی بند خدا داری عالم معنا داری خودتو در رابطه اون عالم ببین من با همین سن مختصر خودم تجربه کم خودم تو قسمتهای مختلف. چه ایران چه خارجی ایران گاهی برخورد کردم دیدم صادقانه بگم متدین به معنای واقعی کلمه برای خدا کمه, کمه دین برای دنیا دین برای مقام دین برای چی دین برای چی حتی استقتام و استثمار علمای دینی برای برق کشیدن خودشون استثمار عالم دینی برای به رخ کشیدن خودشون این که حال هوای معنوی نمیشه که اگر عالم دینی رو عالم دینی قبول کردی به تو میگه آقا جون زندگیت غلطه چشم. نه باید آقا رو نظرشو عوض کنیم دیدم میگم و آقا رو نظرشو شوابز کنیم یعنی چی یعنی آقا رو بخریم بلتایف از یه کارایی بکنیم سر آقا ریشه همین امروز بود یکی از دوستان گفتم از شما این توقع رو دارم تو میخوای تو راهی پیش بری که مبلغ دین بشی میخوای اینجوری باشی نفوذ پذیر نشو از الان تمرین کن پول در تو نفوذ نکنه. مقام در تو نفوذ نکنه. بهبه و چهچه در تو نفوذ نکنه. مرید داشتن و مرید نداشتن در تو نفوذ نکنه خدا را ببین بقیه همه رو بزه کنار یک حفظ خدا خدا میخواد اینجوری باشی باش هر چی میخواد بگه بگه خدا نمیخواد اینجوری باشی. نباش هرکی هرچی کی میخواد بگه بگه دعا میخواد شما رو وقت اینجا امام علیه السلام چی میگه زیاد دعا کنید مقامی در پیشگاه خدا هست که با اون مقام نمیرسید مگر با دعا کردن حالا قسمت غذاشم یک اشاره بکنم خدا غذا دارد و قدر دعا در روایات ما فراوان داریم که یه تیکش الان خوندم قضا را تغییر میدهد رث میکنه ولو مبرم شده باشه ابرام شده باشه میخواد بازش کود یعنی چی یعنی مگر خدا نعوذ بالله یه بحثی در اصول فقه دارن بعضی بزرگان اینجا دارن که مصوبه مصوبه یه حرفی مسخره ای دارن میگن که شما عنوان مجتهد وقتی رفتید دنبال استنباط شرعی ممکنه یه استنباطی بکنید حکم واقعی اون نباشه شما قرار هاشتی سوء هم ندیش. شما اینجوری فهمیدید. خدا چون به شما اجر میده برای اینکه شما بیشتر از این نفهمیدید. اونا میگه میدونن این چرا چون خدا نظر خاصی نداره تا ببینه شما چی استنباط میکنید. هر چی استنباط کردید همونو تصدیق میکنه. مسخره سین حرف فقهای شیعه نمیگن. اینا بعضی از این مزخرفات گفتن. اینجا نمیخوایم بحث مسببه رو به کار ببریم. پس خدا اونجا نشسته ببینه شما دعا میکنید، غذا رو به میل شما. نه خود دعا از غذا و قدره. یعنی من اینجوری بگم خدا دارو در این عالم قرار داده دارو درد را از میان میبرد برو خود رو با نظام قرارداد خدا تطبیق بده درد تو بشناس دارو هم بشناس با این دارو این درد رو از بین ببرد یعنی اون غذا و غدری که خدا در عالم مقدر کرده خود تو با اون وفق بده دقت کنیم؟ توضیح میدم الان مثلا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 زایه ایکس پیدا شده اگرگم یه دارویی است که مثلا از فلان ماده غذایی گرفتن یه قاشق شربت خوریش یه حبه قرص به اندازه عدسش یه کپسول معمولیش این خاصیت رو داره وقتی اون بره تو معده این زایه رو از بین میبره خب همه اینها قرارداد خدا هست یا نیست خدای عالم قرار داده اگه معده این غذا بهش رسید اینجوری میشه مال مال من شد اون دارو هم اگه بیاد تو معده بری این از بین میبره خب اون آقا رفت زحمت کشید پیدا کرد منم شناخ آورد داد به من میگه این کارو بکن من خودم و با این قانونی که خدا در عالم قرار داده بس دادم یه کپسول میخورم میگم آقا راحت شدم من دیشب تا صبح دیگه اصلا درد نگرفت میگه خب این نظامو فهمیدی با نظام هماهنگ حرکت کردی کسی اینو نفهمید یا اون کسی که اینو میدونه نمیره سراغ اون کس. می میناله تو از بمیره. خدا این غذا را این گذرانده در عالم را این سپری شده بر هستی را در عالم ماده به اقتضای ماده قرار داده در عالم معنا به اقتضای معنا قرار داده در عالم ماده اینه یک کپسول این کارو بکنه شما برو خودتو وصف بده در عالم معنا دلا بسوز که سوز تو کارها بکند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 آمنو و وثقوا آمنوا و وثقوا که مربوط به حالت معنویه برکات آسمان و زمین رو برات نازل میکنه و علب به استقامو الا شریقه لا ما ان قدقا که بحثش قبلا گذشت ما قدق بهشون میدیم یعنی آقا از عالم معناوی تو عالم ماده از بالا بر این عالم نگاه کن دعا پرواز از ماده به معناست بعد با حال معنا تو عالم ماده سیر کردنه اون وقت کسی این توجه رو پیدا کنه حتی نسبت به قضا و قدر عالم هم چگونه نگاه میکنه اون وقت حالا ادامه آیه رو ببینید و ازا که عبادی انی فعنی غریبون عجیب و دعوت داع ازادان من که نزدیکم که گفتیم قبلا یعنی چی اقرب و علیه من حبل الودیت فرموده از گونم خوبم معكم عینما کنتم فرموده یه جا معیت رو میگه یه جا حالا اینا بحثش قبلا گذشت کاری ندارم وجیب و دعوت دا من که اجابت میکنم دعوت دا کسی که دعا میکنه بعد فوری میفرماد اذا دعانه یعنی دعانی وقتی منو میخانه پس میشه من دا باشم ولی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 تو شهری که ما درس می‌خوندیم این دیوونه اون شهر بچه‌مدرسه‌ای‌ها میدیدن گاهی می‌ترسیدن فرارم میکردن می‌کردن این میومد داد سرا جلو داد سرا وای نمی‌شد عشان یادمه داد سرای اون شهر تابلو رو نگاه می‌کرد و ادا در می آورد می گفت داد سرا داد سرا یا پول یا زور یا پارتی یا پول داد سرا سرا نمی‌خورد حتی پارتی دارم من که چنین چینو میتونم انجام بدم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 دو هفته قبل بود باز برخورد کردم بهش هنوز هنوز دا... گفتم تو سه سال قبل این حرفو من زدی گو چی گفتم بله گفتم فلان جای حرفو من زدی گویو بله گو آقا شما تو روایات کار کردید کدوم دعاهاست که ائمه میگن بخونید زود پولدار بشید گفتم سه سال قبل این سال از من کردی گو یادته گفتم بله فلان جام بود یادتش خندش کرد گفتم یادته سه سال قبل چی جواب دادم حالا همون جواب میدم چطور طور از روایات هایمه خودون دعاست که منو آدم کنه من نمیگم پولار نشیده بشید در راه خودم خرج کنید البته نه جمع کنید یه گوشو بذارید برای خدا خرج کنید دست بیچاره رو بگیرید خدمت به خلق کنید آلیه من بشتباه نشه اما نیت انگیزه این نباشه آقا شما این همه مطالعه کردید روایت چی میگه من میخوام پولار بشم پس معلوم دینم برای پولداری میخواید رابطه ای با عالمم برای دنیای خودتون میخواید را... یه مقداری از حال ابا بیای، ایذا منو بخونه، بعد دو مالش ببینی. هل یستجیبو لی. من خیلی روی این فکر کردم. تو تفاسیرم زیاد گشتم. خدمت بعضی بزرگانم رسیدم. گفتم تو تفاسیر خیلی ندیدم. به این قسمت به قول عوام بند کنم. که فلی از تجیبوللی بعد از غریب غریبون عجیب و دعوت و دا دعان فلی از تجیب و فورده پس اجابت کنیم منو. خب ما همه جاادده اگه برفرض غریبم نبود عجیب و دعوت دام نبود ما باید جابت کنیم استجابت کنیم خدا رو بپید چیه منظور خوب دقت بفرمایید. <تصفح> معنای عام جابت. باید شما خدا رو اجابت کنید یعنی ها خدا میگه بگید چشم خدا میگه نماز بخون بگو چشم میگه روزه بگیر بگو چش. میگه آقا خونس تو بگو چشم با یه ونده خدای از من میپرسی من مغلد فلان مرجع مرجع من میگه هدیه خمس داره ولی مرجع اون یکی میگه هدیه خمس نداره میشه تو این یه مسئله من به اون مرجع مراجعه کنم گفت <تصح> همه جا پول آقا من نمییم این پول واقعا می‌کنه میکنمیم که یه بنده خدای باز اینو آقایون تبریزی ها رو می امشب ما همش یاد مز تبریزی افتادیم نمیدونم چرا؟ میگفت در تبریزی آقای بود خود به دیبونگی زده بود میگفتن بخلول نقشه بخلول انجام میداد. گفت خیلی سالهای قبل گفت که صندوق انتخابات بود و جمعیت هم اومده بودن که ری بدن استاندار و شهردار و فرموندار و هم هم بودند و این آقای بهلول اون عصر هم داشت اونجا رد میشد گفتن آقا بیا بیا تو هم رای بنداز گفت بذار کنار من بیا اومد و این صندوق رو هی بوستید هی دست کشید هی بوستید هی دست کشید گفت چه می‌کنی گفت مگه امامزاده نیست دارم زیارت می‌کنم قاججون سن نه گفت مامزاده است کدوم امامزاده موجزش از این بیشتره حسن می‌ندازیم حسین درمیاد از موجزه میکنه امامزاده است حالا آقای پول عجب معجزه میکنه. این پول عجب معجزه میکنه. همه چیزو میخوان با دید پول نگاه کردن بابا یک کمی حال هوای مادری رو ول کنیم من خجالت میکشم میگم ولی خدایا تو شاهدی راست میگم میخوام تو خودم هم سر بذاره یه مقدار پول مقام دنیا مادیات جلسات دینیمون به حساب مادیاتمون جلسات روزمون و رفت و آمد های روزهامون آقا به گوشم شنیدم خو اینا درد اجتماعی مذهبی ماست که باید روش فکر کنیم آقا من چند بار روزه شما اومدم شما تو روزه من نیومدیدا میگم عزیزم اصلا روزه من و روزه شما نداره خونه ای که پرچم سردرش خورد دیگه خونه اون سابخونه نیست مجلس مام حسین اگر سابخونه دشمن خونی منم باشه من اگه روزه بتونم برم اون در باز باشه باید برم تو روزه بشینم روزه منش شما... من میخوام ببره یا بدونن شما منو تحویل میگیرید گفتم پس منه پس روزه نیست آب ببینید اینا درده حال هوای ما دیگر همه چیز رو فدای ما دیگر کردن اما وقتی حال هوا معنا بود میگه تو و تو نیکی میکن در دجله انداد که ایزد در بیابانت دهد باد خدا رو کوچک دیدیم فلیش تجیب و لی پس معنای عام میشو بگید اینجا معنای عام اینه که پس باید منو رو اجابت کنن این... ولی در این رابطه میگه فا فامیاره داره ربط به قبلیش رو میگه میگه وقتی من قریبم یعنی نزدیکم من عجیب و دعوت دا ازادانم پس باید من اجابت کنم یعنی چی؟ یعنی قبول کردید من از همه شما نزدیکترم قبول کردید منم که اجابت میکنم یعنی هبچی بخواید من میدم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 مهمورینو گذاشت و برید بالای مثلا برج بیستید و چیکار کنید و تیری به سمت آسمان رها آس... کردن ملائک مقرب الهی به خدا عرض کردن خدایا این خیلی فرو شده این دیگه داره خودش گم میکنه خدا فرمود که تو زبش نزنید نامیدش نکنید یه چیزی از اون بالا خونالود بندازید پایین که این خیال کنه مثلا خدا رو پشته رفتن ماهی از دریا گرفتن. ماهی به ناله در اومد که خود از من مثلا ضعیف‌تر تو این عالم نبود حالا نمرود مخاط یکی رو بکشه من گفتم در حالا هر کردم اینا سندش چقدر یا اسرائیلی یا نه ولی اصل قضیه‌اش غریبه به مزامین قابل قبوله ولی عین این, این داستان‌ها دیگه من نمیدونم من دارم نقل میکنم خب خدا مقرر کرد که از حالا به بعد من کاری میکنم که ماهی دیگه ذبح نخواد ماهی رو سر نبرن همونجوری مصرف کنن. ماهی اونالودی از بالا افتاد پای نمرودم خیلی جس گرفت که ببینید ما خدا رو کشت فرشت خب فرشت هم خداگه نیست خدای آخه چنین حالا حالیشون میکنم بعد که نمرودی خیلی دور برداشت منم که چنین میکنم یه روز گفت که خب خدا که کشتم هم خدای این خلق منم هم رازق این خلق منم یک نهنگ گولپیکری از تو دریا دانش آورد بالا به ازن الله به زبان آمد نمرود قضا بده نمرود گفت خب بدید ریخ ریخ هرچی داشتم گفت این که مومی نداره ما دیگه چی نداریم گفت این که میگن دو گردانیمش باقیه گفت من سه گرد قضا میخورم نسوشه خوردم دو گردانیمش باقیه گفت چی ندارم گفت تو یک مخلوق از مخلوقات خدا را رو نتونستی روزه بدی یه بعده خدا اونه که همیشه داره روزی میرسانه خبر رازه خبر رضا. حالا این اگه در قالب یه داستانم برای ما نقل کردن سندش چقدر نمیدونم مض به کی تحیه کنیم تو این عالم با داشتن خدا فلی از بودی، پس منو قبول کنید پس بیایید منو دارید من خدا رو با چیز دیگه عوض نکنید بیاید خدایی بشید فلی از تجیب بولی فلی اومن بی پس باید به من ایمان بیارن به من ایمان بیارن که چی مثلا یعنی ایمان آم اشخدو الله اله الله و ها کزو آمن تو به الله مثلا نه در این رابطه ازا سعلا که انی عبادی فانی غریبون عجیب و دعوت ازا دعان فلیستجی بولی فلی اقمن پس این ایمان رو پیدا کنید ایمان به این معنا منم غریبه به شمام اجابت کنندم همه چی دست منه این ایمان رو پیدا کنید بشید مؤمنه در این سطح لعلهم یرشدون باشه که راه واقعی رو در پیش بگیرید وقت اجازه نمیده و گرنه نمیخواستم حالا میخوام خودتون این کار رو بکنید ارتباط این آیه با آیات شست تا شست و چهار سوره نمل که آیه شست و سه امن یو جیب المستر ازاد دعاه و یک شف و سو که معمولا هم به عنوان توسل میخونم چرا میخواستم امشب اون چهار آیارم تو این بحث بیارم اما دیگه وقت اجازه نمیده اجازه بدید این بحث رو جنبندی کنم و اشاره ای به برنامه انشاءالله ماه محرم داشته باشیم و, و دلم هم میخواد این آخرین جلسه سال قمری است آخرین شب جمعه است اولین جلسه ما دیگه شب جمعه آینده محرم با شروع بشه آخر ما اول سال پارسالمون رو با امام حسین شروع کردیم چون ایام محرم بود دیگه آخر سالمونم هم جلسه رو میخوام با امام حسین پایان ببریم میخوام امشب انشاءالله بریم کربلا و بریم در خانه امام حسین و به امام حسینم عرض کنیم آقا نه امسال ما همیشه ما را اول و آخر ما را خدایا حسین و حسن و علی و زهراب و ای خانواده قرار بده انشاءالله انشاءالله خب جممندی بحث چی شد دعا حال و هوای آلم معنا به ما میده ما رو تو عالم معنا میبره با توجه به عالم معنا در ملک سیر میکنیم سیر ملکی بر اساس معنا است که خدا میخواهد و اگر کسی خدایی شد او برده و میگه ایمان بی حرفو بیارید اینا رو اجابت کنید اینجوری بشید تا اون راه بری و رشد و تو مسیر قرار گرفتن براتون حاصل بشه انشاءالله از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است ما که خدا رو شکر این فرهنگ رو از بچیگی همه من داریم که بگیم من از کودکی آشقت بودم قبولم نما گرچه آلودم یادش به خدا قسمت همه بکنه توی حرام امام حسین و توی سحن امام حسین با دوستازم زم می کردیم می گفتیم اینجا به امام حسین بگیم من از کودکی عاشقت بودم قبولم چه آلوده آلودم ولی خب حالا حاله هوا دیگه حاله هوای دیگریه حال دیگه, دیگه در آستانه محرمه روزم که روز نزول آیه حلعتاست امروز دیروز روز مباهله بوده بعضی میگن احتمالا امروز هم روز مباهله بوده ایام ایام خاصیست آخر سال قمری آخر زلحجه در آستانه ماه محرم انشاءالله میخواییم همون طوری که معمولاً در فرض کنید نوروز ایده قربان، ایده فطر ایده قدیر آدم داره رو آماده میکنه برای ایده خونه چکنی میکنه منظر تمیز میکنه مهمونا میان دوستا میان در محرم یک خونه تکانی روحی داره برای آماده شدن از آداری امام حسین این تقاضا دارم دقت کنیم طول نمیدم وقت گذشته <تصفيق> انایت بفرمایید. یه دهه محرم میگذره یه محرم و سفر میگذره آدم حس میکنه سبک شد بال لراورده حال هواش حال هوای دیگریه تا محرم دیگه نعشه است نعشه حسینی لذا یه عشقی من خب کارم اینه دیگه با جوونا در ارتباطم افتخارم میکنم که با جوانا اینجوری نشست و برخواست داریم خدا شاهده راست میگه ها شده بعد محرم جوانو اومده میگه میخوام توبه کنم امام حسین منو تکن داد امنال حسین مصباح الهدا و سفینه و نجا دخترم اومده میگه زینب منو تکون داد میخوام چادر سر کنم حالا چیکار کنم و خدا شاهده همین پارسال تو همین حسینیه شاید هم الان باشم باشه من چشمم نمیبینه یه جوان عزیزی فرمود من فقط امسال تو مجلس اومدم من توالا احلی مجالس نبودم من اومدم توی مجلس ولی تصمیرامو گرفتم یک خواهش از شما دارم گفتم از من کاری بر بیاد چشم چیه؟ گفت دعا کن امام حسین یه کاری کنه من جایی دیگه نرم من بمونم گفتم من چه کارم عزیزم چشم دعا وظیفه است من دعا میکنم. ولی خودت قدرتو بدون تو شست و شو شدی تو دریای زلال آب هدایت عبی عبدالله علیه السلام لذا گایی محرم چه میکنه گایی روز آشورا برای یه زرف غذا گرفتن مشت میزنه بغل دستی برو کنار غذا رو من بگیرم و قسعلا آزا این بستگی به یک سلسل آمادگی ها برای ورود به مجلس ما محسین هم داره همونطوری که در شبای قدر گفتم بعضی از این سال شب قدر تموم می شود. کاری میکردن که شب قدر آینده اگه زندان فیز ببرن همین چند روزی که باقی مونده، برید توسل بیدار کنید من بیچاره رو دعا کنید که دستم رو بگیرن که یا حسین ما همیشه میگیم یا حسین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 وامو دیگه الان چند روزی مونده دیگه الان کاروان از مکه که خارج شده خیلی از بیابونا هم پشت سر گذاشتن همینجور تیکه تیکم که اومدن هی خبرها به اینا رسیده مسلم رو کشتن حانی رو کشتن فلان قاصد رو گرفتن با فلانی این عمل رو، این بلا رو سرش آوردن امام حسین هم هی خطبه میخونه هی توضیح میده هرکی نمیخواد بره هرکی یه عده میرن یه عده میان عجیبه دقت کنید یه عده میرن یه عده در عوض دارن به امام حسین میپیوندن یعنی این کاروان به خدا رو در نظر بگیرید یه عده ممکنه دم از خدا میزنن ولی تا به سرمنزل مقصود برزی میریزن یه عده خدا نمیگفتن ولی بین راهها ها اومدن به خداییان ملحق شدن امام حسین داره این درس رو به ما میده ببینید چه کار میکنید نکنه یه جوری باشه شما رو جدا کنن و دور بریزن خب اما خود امام حسین علیه السلام این حدیث معروف هفته قبلم شنیدم که حضرتهای وحید در, در درس خارجشون در قوم که درس به عنوان محرم میخواستن تعطیل کنن این حدیث رو مطرح کردن این ادامه ادامه‌ی حدیث رو ایشون مطرح کردم که یکی از افقای من ایرانم نبودم. وارد شدم یکی از دوستا به من زنگ زد گفت سند این روایت رو که این روایت رو دیدی گفتم بله تو گفت خب اینجاشم آقای وحید پیدا کرده. گفتم خیلی عالیه بگو می‌خوام بنویسم. خیلی جالبه این قسمت ادامهش خب ایشون محققی است که توی روایات و احادیث و اینا دیگه معلوم. اصل روایت همه می‌دونید. اینم هم هدیه‌ای باشه، خیلی برام جالب بود. داره که اصل قضیه که جناب ام سلمه نشسته بود در اتاقی که وحی بر پیغمبر نازل میشه پیغمبر تو اتاق بوده تا اینجاش معروف ها اون قسمتی که اخیراً سند ایناش پیدا شده جالبه میخوام ارز کنم پیغمبر فرموده بود وقتی من تو این حجرم کسی وارد نشه این یک دستور دستور دوم کسی حسین منو نیازوره اگر کسی حسین دو آزور این منو متاسف ام سلمه میگه من دم در مدر نشستم پیغمبر تو اتاق امام حسین علیه السلام بچه از راه رسید علای ظاهر بچه دوید بره تو اتاق من جلوشو گرفتم زد زیر گریه من تفسیرم راهش کردم خب پیغمبر بود گریش رفت تو اتاق پیش پیغمبر لحظاتی بعد دیدم حسین بغل پیغمبر پیغمبر گریوان شاک زده قیافه گردالود عشق ریزان منقلب داره از اتاق میاد بیرون من دویدم جلو گفتم نکنه من کوتاهی کردم جلو امام حسین رو نگرفتم پیغمبر ناراحت شده حاسم عذرم و توضیح بدم گفتم یا رسول الله من رفتم جلو حسین رو بگیرم به گریه افتاد لذا جرعت نکردم پرمود نا اون برای این ناراحت نیستم حسین تو بغلم بود میبوسیدم و میبوییدم جبراییل گفت میخوای کربلا رو به اتنشون بده؟ اون لحظه حسین من رو نشونده که فریاد میزد حلم ناسنه حالا ایناش معروفه اینجا به بعدش مهمه خیلی جالبه خیلی قشنگه اینجا به بعدش امه سلمه عرض کرد یا رسول الله اینو ما ندیده بودیم که این روایت ایشون پیدا کردن فرمودن که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 جز با این طریق شهادت نمیشه لذا من این دعا رو براش نمی کنم. حالا شاید من نمیدونم، شاید اون لحظه ای که زینب کبراز سلام الله علیه ها اومد کنار قتلگاه بدن حسین تو گودال قتلگاه دید رو کرد به مدینه سلا علیک ملیک سما یا رسول الله حازا حسین و مرملون به دماغ مقدت اول و بناتو که اشاره به این قضیه باشه درود بر تو ای رسول خدا سلام ملائکه بر تو ای این همون حسین است که الان بدنش اوریان روی خاک افتاده